حکایت، ابلهی را دیدم سمین، خلعتی سمین در بر و مرکبی تازی در زیر و قصبی مصری بر سر. کسی گفت، سعدی، چگونه همی بینی این دیبای معلم بر این حیوان لایعلم؟ گفتم، قدشاب هبل ورا همارون، اجلن جسدان. لهو خوارون یک خلقت زیبا به از هزار خلعت دیبا به آدمی نتوان گفت ماند این حیوان مگر درائه و دستار و نقش بیرونش بگرد در همه اسباب و ملک و هستی او که چیز نبینی حلال جز خونش